بسم الله الرحمن الرحيم درس سهم مواضيع جزم الفعل المضارعي جاهاي مجزوم شدن فعل مضارع متى يجزم الفعل المضارع چه زمان فعل مضارع مجزوم می شود كم هي الادوات الجازمة؟ فعلا واحدا ادوات أدواتك فقط فعل را مجزوم میکنند چند تا میباشند ده كم هي الأدوات الجازمة في لغتي ان ادواتي كدوتا فعل ومجزوم مكنن چند ما هي احكام الشرط والجواب احكام الشرط والجواب چه هستند 12 متى عمل اسماء الشرط چه زماني عمل اسمها شرط باطل ميشود 13 في اي محل تدخل الفاء على جواب الشرط وجوبا در محلي فا بر جواب شرط به شکل وجوبی وارد می شود چهارده متا تدخل الفاء على جواب شرطی جوازن چه زمان فا بر سر جواب شرط می آید اما جوازن پانزه فی کم موضعا یمتنع دخول الفاء على الجواب در چند جا ممنوع است داخل شدن فا بر جواب شرط شانزده متا یربطو الجواب بی ایده الفجائیه چه زمان رب داده میشه جواب با اضایف و جائح 17. کیف العمل اذا اجتماع شرط و قسم زمانی که هم شرط و هم قسم یک جا جمع شدن اونجا چه عملی پیش میاد کدوم یکی از اینا عمل میکنه کدوم یکی نمیکنه عمل مال کدوم یکی 18. ما حکم المعطوف علی الشرط والجواب حکم معتوف بر شرط و جواب چه یک که اومد بر شرط و جواب معتوف شد حکمش چی میشه؟ نوزه حل و حضف و شرط شرط و این و جوابها آیا شرط این و جوابش حصف میشند؟ متا یجوز و حصف الجواب چه زمانی جایزه که جواب حصف بشه؟ بیست و یک متا یجزم و المدارع به این مزمرتن وجوبن چه زمانی مجزوم میشه مزاره؟ با این تا اینی که وجوباً چه هست؟ مزمر هست خب اینا چندین سؤال بودن که هر یکی از اینا رو بروشنی خودش توضیح خواهد داد 8. یجزم و یجزم الفعل المضارع اذا سبقته احد الادوات الجازمتی و هی قسمان مجزون می شود فعل مضارع زمانی که قبل از اون یکی از ادوات جازمه بیاد و این ادوات خودشون بر دو قسمت قسمت یجزمو یجزمو فعلا واحدا قسمی که فقط یک فعل می میکنند و قسم یجزمو فعلین و قسم دیگه دو تا فعلو مجزوم میکنند لو الادوات الجازمه فعلا واحدا اربعون اون ادواتی که فقط یک فعل را می میکنند تا هستند لم نحو لم يذهب احد لم يذهب احد کسی نرفته است اینجا می بینیم که یذهب با لم مجزوم شده و ساکن گرفته دو لما نحو تعلم اخیق القراءت و لم یکتوب برادر من قراءتو یاد گرفته است ولی هنوز نمی نویستد که لما یکتوبو چکار کرده؟ مجزوم کرده و علامت جزمش هم سکون هست لام الامر جازم بعدی که یک فعلو مجزوم میکنه لام عمره مانند تطب نفسو نفست خوش باشد اینجا هم تطب مجزوم شده است که میبینیم ساخن گرفته است. لا النهیه و چهارمین عداتی که یک فعلو مجزوم میکنه لا او هست منذ الله تسمى رحمه الله عز رحمة خدا لوميد نشو فوائد فسين چارتا چند فعل مجروم میکردند یک فعل فقط یک فعل مجروم میکردند لم و لم يقبلان معنى المضارع معنى المضارعي ماضياً غير أن لم تنفي الفعل في الماضي مطلقاً ولما تنفيه في الماضي متسلاً بالحال فيقال لم يقم ثم قام ولا يقال لما يقم ثم قام مجلّم ولما حردت معني مزارر بالماضي تبدأ المجلس بال با إن فرق الله به شکل مطلق فعل ماضی رو در گذشته نف میکنه. اما لما فقط تا زمان حال نفیش میکنه. تا زمان چه؟ موقعی که ما بگیم لما زید زید نرفته است ماضیه دیگه نه؟ اما موقعی که بگیم لما یذ زید هنوز نرفته است یعنی فقط تا زمان حال نفیش میکنه. تا زمان چه؟ حال به این خاطر در عربی میشه گفت که لم یکم نه ثم مقام سپس استاد اما نمیتونیم بگیم لما یقوم ثم مقام هنوز نه ایستاده استاد ایستاد وقتی تا زمان حال اون لما چکارش میکنه نفیش میکنه دیگه این ثم مقام معنا نداره تزادق دو يجوز وقوع لم بعد اداه شرط نحو ال لم تزورنی اعطب الیک جایز اسواقه شدن لم بعد از اداه چی بعد از عدات شرط جایز است واقع شدن لم بعد از عدات شرط مانند الم تزورنی اعط ب اگر مرا زیارت نکنی سرزنه شک میکنن خب اینجا میبینیم که لم تزور قبلش اداه شرط این اومده پس جایز است که لم بعد از عدات شرط بیاد ال لم تزور لم بعد از چی اومده؟ بعد از این که از عدات شرطه دیگه؟ بله خلاف لما میگه برخلاف لما فیکون المداره و مجزومن لفظاً به لم یعنی لما نمیتونه بعد از عدات شرط بیاد خب موقعی که چونین شد هم این اومد و هم لم اینجا فعل مزاره با کدوم یکی مجزوم هست؟ ها؟ هم این اومده هم لم هر دوتا هم جازمه هستن؟ حالا ما میگیم با کدوم یکی مجزومه؟ بale میگه فعل المضارع لفظا و محلا به یعنی لفظا با لام مجزومه اما محلا با اثر یعنی رو مجزوم کرده لمی ولی اون چه که مجزوم کرده چه ene صحیح و حذف لما لدلیلا صحیح میگه جایز است مجزوم لما رو حذف کنیم جائزه است حذف چه یعنی اون چیزی رو که لما مجزومش کرده اون فعلو میشه حذفش کرد خود لما رو آورد به خاطر وجود دلیل مانند قربت المدینه ولما نزدیک شهر شدم اما هنوز نرسیده ام ولما اصل اما هنوز چی اصلو حذف کرده اصلو چیکار کرده حذفش کرده که بس مش مجزوم لامار وحاسف كرت. بخلاف مجزوم لام. نيجي برخلاف مجزوم لام. يعني تونايمي توني مجزوم لام وحاسف كولي. بعد ذكرش كولي. تهار. لا ملأمر ولا أن هي تخلصاني زمان المضارع إلى الاستقبال وتكونان للدعاء إذا كان المخاطب أعلى من المتكلم. نحو. ربي فلتكل مشيتك. وربي لا تؤخرني لام امر ولا نهي خالص میگردانند زمان مضارع را به استقبال یعنی معنیش رو به استقبال تبدیل میکنند لا نه و لام امر فعل مضارع معنیش رو تبدیل به چی آینده المخاطب اعلى من المتكلم و اون موقعید اینار اینا رو میگن لام دعا لای دعاء چه زمان زمانی که مخاطب بالاتر از متکلم باشه مثلا چطوری مثلا اگر من خداوند رو صدا بزنم که بگم ربی مثال خودش آورده ربی فلتكن مشیئتك فلتكن اینجا امر دیگه لام امر اومده ولی از اونجا که بنده داره خدا رو که مخاطبش هست و از بنده بالا ترسته داشت میزنه دیگه اینجا نمیگیم این لام لام امره میگیم لام لام چیه؟ دعایه همچنین لای نه دیگه نمیگیم لای نه میگیم لای دعا رب بلاتو آخذنی پروردگارم را معاخذ نکن موقعی که بنده به پروردگار میگه میگیم این لا لای چیه هست؟ دعا این نقطه خوبیه میگه زمانی که مخاطب ما بالاتر از متکلم بود اون موقع مال دعاء میشن مال چه میشن پنج من خصائص لام الامر ان قد یج يج... ان قد یجزم بها مزمرهون ولكن في الشعر ولكن في الشعر ومن ذلك قوله فلا تستطل منی بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيبه. ببين؟ من خصائص لام الأمر أن قد يجزم بها مزمارتون. ما رجمنا يجري نوشتة؟ مرسوم چی نوشته؟ آ؟ پنج شماری پنج چی نوشته؟ آ؟ تبصری نه نوشته؟ تبصره پنج. نه ایناها. ورده. خب من خصای سلام الامر انقد یجزم و بها مزمرتن ولیکن فشیر اینجا مزمرتون نوشته ولی نواد اینجا مزمرتون مزمرتون مینوشته چون میدونی چرا؟ بخاطر این که میگه از خصای سلام الامر اینه که با لام امر مجزوم میشه زمانی که لام امر مزمر باشه اما در شیر یعنی خود لامه امر ظاهر نیست مزمره اگر ما اینجا بگیم مزمرتون معنی به هم میخوره بعد اینجوری بگیم من خصای سلام امری ان یوج زم و بیها مزمرتن در حالی که مزمر هست اگر بگیم یوج زم و بیها مزمرتون این مزمرتون معنی برعکس میشه یعنی یک فعلی که مزمر هست باش مجزون میشه در حالی که معنی این طوری از خصائص لام امر این هست که مجزون میشه به وسیله لام امر در حالی که لام امر مزمره در حالی که لام امر چیه؟ معنید این شاهد شعری که آورده فلا تستطل من نیبقائی و مدتی ولیکن یکون للخیر من که اینجا در از اس چنین است ولیکن لیکون للخیر من که یعنی باید نصیبی از خیر در وجود تو باشد نصیبی از خیر در وجود تو لیکونه که لام است هست؟ لام امر در یکون در چی؟ بله ده الادوات و الجازمتو فعلاین هی اثنتا لفظه ادواتی که دوتا فعل و میکنند دوازده تا میباشند عبارتند از یک این این دوتا فعل و میکنه مانند ان تکسل تخسر که هم تکسل و کرده و ها فعل شرط و جواب شرط از ما مانند از, ما از ما تتعلم تتقدم خب تتعلم هم مجزوم کرده تتقدم هم مجزوم کرده من مانند من یاطلب یجد هر کس طلب کند یابد هم یاطلب و مجزوم کرده و هم یجد رو هر دوتا ساکن دارند علامت جزمشون سکون هست ما مانند ما تتعلم في الصغر یا فی کفل ان انچرا که بیاموزی در نفعت میدهد در بزرگی خب هرچه بیاموزی خب اینجا تتعلم که فعل شرط هست مجزوم هست علامت جزم شکون هست یعنی نفع هم جواب شرط هست و مجزوم علامت جزم ساکن هست مهما مهما تأمر افعله هم هر چه دستور هرچه خیر دهی انجامش میدم خب مهما دو فعل مجزوم کرده تعمر رو که فعل شرط هست علامت جزمش سکون هست افعال رو مجزوم کرده که علامت جزمش باسم سکون هست ایو مانند این توکرم اکرم ببین این از اون جایی که مورب هست اینجا مفعول بیهیه منصوب شده این توکرم اکرم توکرم رو هم مجزوم کرده که فعلشه اوکرم رو او هم که جوابشه کیفما ما تتوجه اتوجه هر طور روی کنی روی میکنم هر طور براوی میرون هر طور سورتت را بگردانی، سورتم را خوب، اینجا تتوجه مجزوم شده، علامت جزمش سکونه، اتوجه هم که متکلم وحده هست، مجزوم شده و علامت جزمش سکون هست متا ماننده متا یسلوح باطلوک یسلوح ظاهروک یسلوه هم مجزوم کرده علامت جزم سکون یسلوه دومی رو مجزوم کرده که اون هم ساکن داره ما تذهب تنج هر کجا بری پیروز میشوی اینجا هم تذهب و مجزوم کرده علامت جزم سکون تنج هم مجزوم کرده علامت جزم سکون ایانه مانند ایان تسالنی اوجب که خب ایانه هر وقت سؤال هم کنی جوابت میدهم اینجا ایانه تسعل مجزوم کرده علامت جزمش سکون او جبو ممکن متکلم واحد است مجزومش کرده علامت جزمش سکون است ان یذهب صاحب المال یکرم هر طور برود صاحب مال یا هر کجا صاحب مال برود اکرام می‌شود خب این ان یذهب یذهب مجزوم کرده علامت جزمش ساکن یکرم هم مجزوم کرده علامت جزمش ساکن حيثما ما حیث ما تسقط تثبت هر کجا سقوط کنی اونجا ثابت میمانی خب تسقط رو هم مجزوم کرده تثبت هم چیکار کرده مجزومش کرده فواید پس اینا این 12 تا دو تا دو تا فعلو چکار میکردن؟ هم فعل شرط و هم جواب شرط حالا فواید الادوات و فعلی اذا وقعت بعدها ما زائده لوانی نو اون لا یجزمو الا مقترنن بها و هو حیثو و اث میگه ادوات ای که دو تا فعل و مجزوم میکردند ادوات جازمهی که تند تا فعل مجزوم میکردند زمانی که بعد از اونا مای زائده بیاد این ادوات میگه بردونو هستند مي... بردون نو ای که مجزوم نمیکنند مگر همراه با ما یعنی ما باید باشون همراه باشه تا مجزوم بکنند اونا چه هستند؟ یکی حیث و یکی اث حیثو ما و شرط شلهمين هست که ما باشون باشه تا مجزوو کنند ولا اون يجوز فيه الامرن وهو ان ايو متى ايانه و اينه نو دووموني هست که هر دو امر درش جائزه يعني چي ما بيات ما نيات و تضمو الیها کیفا اندمن یجزم بها و په واس داده میشه کیفا به ما زائده نزد اونایی که میگن کیفا هم مجزوم میکنه چون کل نحوی ها در این مسئله نظرشون یکی نیست خاطر این گفته اندمن یجزم بها نزد اونایی که با کیفا چکار میکنند مجزوم میکنند و اما باقی ادوات، فلات الحقه ما باقی مانده ادوات و ما روشون و نمیات و كلها اسم اللا ان تمام این ادواتی که تا اینجا کارمن شما خوندیم اینا اسم هستند. جز ان جز انتنصرور انصرع این ان اسم است و حرف و شرط این حرف بقیه اسم هستند چه هستند؟ دو أول الفعلين الواقعين بعد أدوات الشرط يسمى شرطا والثاني يبنى عليه باعتبار كونه مسببا ويسمى جوابا ويقال له الجزاء إذن لترتبه عليه كما يترتب الجزاء على العمل. ميجا أولا فعلك عزون دفعلك بعد أدوات الشرط مورمادن فعل أولا مجانا شرط فعل أولا مجانا شرط. و دومی رو میگویند چی؟ جواب. دومی رو چی میگن؟ بله میگه دومی بنای بر اولی میشه. چون مسبب اولی سبب دومی مسبب. اگر بخوانی قبول میشوی. اگر بخانی پیروز میشوی. پس دومی میشه مسبب اولی مسببه نه؟ بله بهش جزا هم گفته میشه چرا؟ چون دومی مترتب بر اولیه یعنی اولی باشه تا دومی؟ بله همانطور که عمل جزا بر عمل مترتب میشه اینجا هم دومی بر اولی دومی بر؟ یازده حق و شرطی مقدماً علل جواب حق شرط اینه که مقدم بر جواب باشه یعنی اول شرط بیاد بعدش ان تنصر الله ی ان تزرب ازرب اگر بزنی میزنم اول شرط میاد بعدش جواب و ان یکون فعلاً خبری متصرفاً پس حق شرط اینه که مقدم بر جواب باشه و اینکه فعل خبری متصرفی باشه فيل جامدی نباشه خبری هم باشه انشایی نباشه دعا نباشه خب و اما الجواب فلا يتقيد بشيء من ذلك اما جواب این شرط براش لازم نیست مقید به این چیزا نیست و هو قد يكون موافقا للشرط و قد يكون مخالفا له و شرط گاهی موقع جزا گاهی موقع موافق باشه شرطه گاهی موقع مخالفشه. شه ها آره می‌بینی اولی ماضیه ولی دومی دو مزاره. اولی مزاره، دومی دو چیه میگه گاهی موقع موافق، اما گاهی موقع چیه مخالفه فیقع الفعلان خب میگه واقع میشن هر دو تا فعل مضارعیلی هر دو تا واقع میشن هم جواب و هم شرط و هم جوابش. مانند ان تصبر تظفر اگر صبر کلی پیروز می شوی اینجا هم فعل هم فعل شرط و هم جواب شرط چه هستند مزاره هستند و ماضیی یا هر دو تا واقع می شوند مانند ان صبرت ظفرت اگر صابر کلی پیروز می شوی و متخالفه نگاه موقع با هم فرق می کنند اولی مازی دومی مزاره یا اولی مزاره دومی مازی در گفته ان وقوع شرط مضارع و جواب ماضی اینکه شرط مضارع باشه اما جوابش ماضی این خیلی زبان ضعیفه لغت ضعیفه یعنی لغتای فسیحی کار بکار بالي. خلاصه یا مخالف هم دیگه هستن ماننده یعنی اولی ماضی دوفمی مضارع یا اولی مضارع دوفمی ماضی فائده اذا کن شرط و جواب مضارع واجب جزمهما تبصرها رو توضیح میده میگه زمانی که شرط و جواب هر دو تا مضارع بودند واجبه هر دو چی بشن ها بله هر دو تا بعد مجزوم میشن زمانی که هر دو تا مضارع باشند هر دو تا بعد چی بشن بله تمام مثالی که تا اینجا خوندیم اینجوری بود ان انصر هر دو تا چی بشن مجزوم و اذا كان, كان في محل جزم اما اگر هر دو تا ماضی بودند ما میگیم محلل مجزومند دیگه لفظا ماضی مبنی تغییری نمی کنه ان ضربته ضربت اگر بزنی میزنن خب این مبنیه پس میگیم محلل مجزومه یعنی محلل شینه که مجزوم یعنی لفظش مجزوم و اذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا اما زمانی که شرط ما ماضی بود معنید انصبرتا تغفر و اذا کان شرط ماضیان و زمانی که شرط چی بود ماضی بود والجواب مزارعان اما جواب برعکسی بود مزاره بود و جب جزم الماضی محلن میگه ماضی که محلن باید مجزوم بشه و جاز جزم المزارع و رفعه در این حالت که مزارع رو مجزوم کنیم و که مرفوش کنیم یعنی ما میتونیم بگیم ما میتونیم بگیم. ان صبرته تنفر مجزولش کنیم میتونیم بگیم ان صبرته تفرو میتونیم مرفوعش هم بکنیم میتونیم مجزولش کنیم و میتونیم مزارع رو چکار کنیم مرفوع و اما رف اما رفع الم... میگه چرا هر دو تا اعراب جایزه توزیعش میده اما رفع المضارع خبرون لانه خبر لمبتدا محذوف میگه چرا ما اینجا اومدیم تذفر رو مرفوع مرفو کردیم میگه به خاطر اینکه ما اینو خبر یک مبتدا حساب میکنیم و خبر هم مرفوعه دیگه چه شیست هم خبر مبتدای محزوف یعنی مبتدای ما حصفه و این خبرشه رشه و الجملة جواب و شرط اون موقع جواب شرط کجا میره؟ کل جمله مثلا انصبرتا انت تذفر تذفرو انت که مبتدای ما حصف شده تذفرو هست. اون ای که حذف شده به اضافه تذفرون بیشن جواب بیشن چی؟ یعنی یک جمله میشه جواب و خود تزفرو به تنهای جواب به خاطر مرفوه و لا فرقا یکون شرط و مازیان لفظا کما او معنا. میگه فرقی نمی کنه ببین گفته بود اگر مازی ما اگر چی فعل ما مازی بود فعل شرط ما مازی بود و جواب ما مزاره میگه فرقی نمی کنه که فعل لفظش مازی باشه یا اللحاظ معنای فقط مازی باشه لفظش مزاره باشه ولی همین که معنای مازی رو داد در دومی دو جایز میشه رفع نس رفع و, رف و لا فرق یکونه شرط و مازی یا لفظن که ما رایته او معنا میگه فرق نمیکنه که این شرط ما لفظی یا اللحاظ لفظی مازی باشه یا نه فقط معناش مازی باشه مانند این مثال اغضب اگر مرا زیارت نکنی اینجا لم تزور درست مزاره ولی اللحاظه معنای چیه ماضی چون روش لم اومده پس, پس خلاص ما ماضی دیگه حسابش میکنیم اقضب رو میتونیم مجزوم کنیم و میتونیم دیگه چیکارش بکنیم کنیم مرفوش کنیم گفته بود دیگه اگر فعل شرط ما ماضی بود میتونیم مزاره من رو مرفو کنیم و میتونیم چیکارش کنیم اگر مجزومش کردیم که خب مسلمت جواب حسابش کردیم و جواب مجزومه اگر مرفوش کردیم اون موقع خبر مبتدا حساب کردیم که مبتدا چیه؟ حسفه دوازده ان اسماع الشرط جمیعا لها صدر الكلام فلا یعمل فیها ما قبلها الا اذا كان حرف جرن او مضافن ببین نقطه رو میگه میگه این اسماع شرطی جمیعا لها صدر الکلامی آره میگه اسماع شرط همهشون لها صدر الکلامی جایگاهشون صدر کلامی إن أسماء الشرط جميعا لها صدر الكلام. ببين جملة تريه. ميج همان أسماء الشرط هميجي شون. برايشون كجاء جاي شون كجاء صدر الكلام. أولا جملة أولا كلام. فلا يعمل فيها ما قبلها إلا إذا كان حرف جر أو مضاف. ميج عملنا كنا درين أسماء الشرط ما قبل شون مجر زمان كحرف جر بشه يا مضاف. فإن عمل فيها غير ذلك اگر یکی دیگه اومد و در اینا عمل کرد اگر غیر از حرف فجر و مضاف اومد در این اسماهای شرط قبل که اومد و درش عمل هم انجام داد میگه باطل عملوها اون موقع عمل اسما شرط خودشون باطل میشه یعنی اون موقع اسما شرط عمل انجام دیگه مجزوم نمی و خرجت ان شرطیتی و از شرطی بودن خارج میشند از شرطی بودن چکار میکنن؟ ورفع المضارع و رفع و بعدها و مزاریک هم بعد از این اسم شرط اومده که مرفو میشه ماننده انا من یطلبو یجیدو ببین؟ این من من شرطی هست در اصل و لازون جای که انا اومده روش عمل کرده انا اومده روش عمل کرده خلاص عمل من چه شده؟ باطل شده میبینیم که یطلبو مرفوه یجیدو هم چیه؟ مرفوه و ما یه سر که اینجا هم قبل از ما ليس حرف اسم فعل ناقصه اومده درش عمل کرده به این خاطر ما عملش باطل شده میبینیم که یه و یعجیبون مجزوم نیستند فائده کلو اسمای شرط مبنیتون معده ایول ملازمت ها الاضافتا میگه تمام اسماهای شرطی که ما خوندیم مبنی میباشند اسماهای شرطی میباشند جز ایو که این همه همیشه چیه؟ مضافه فاذا وقعت هذه الاسمه و بعد حرف جر او مضاف فهیه في محل جر زمانی که واقع شدن این اسمها بعد از حرف جر یا بعد از مضاف محلن مجرور میشند خودشون محلن چی میشند؟ ماننده اما تسأل اسال. این در اصل عن حرف جر. خب ما محلن مجروره اینجا دیگه چون روش آمان اومده عمل کرده چرا؟ چون قبلا گفت اگر حرف جر رو قبلش بیاد عمل انجام میدند غیر از حرف جر و مضاف اگر قبلشون چیزی اومد و در اونها عمل کرد اون موقع عملشون باطل میشه اینجا حرف جر روش اومده آن اومده یا غلام و من تذرب اذرب اینجا هم من عمل انجام داده درست مجروره ولی چون مضاف درش عمل انجام داده بغیر غیر از حرف جر یا مضاف اگر در اینا عمل کرد اون موقع خود عمل اینا, اینا چی میشه باطل میشه اما اگر حرف جر در اینا عمل کرد یا مضاف اومد و اداره کرد عملشون باطل نمیشه اینا خیلی نکات کنکوری آقای اسام خان و اندلت الا زمان او مکان فهي في محل نسب على الظرفيه لفعل الشرط خب حالا اعرامشون داره توزیع میده خودشون چه اعرابی دارن یعنی مثلا ابلهم ما خوندیم دیگه اونجا ولی ترکیب نکردیم حالا میگه که اینا چه اعرابی دارند میگه اگر این اسم های شرط دلالت بر زمان یا مکان کردند اون موقع محلن منصوب هستند دو ظرف هستند به خاطر برای فعل شرط برای چی مانند متا تقم اقوم میگیم متا اینجا منصوبه محلن چیه منصوبه بله فعل شرط درش عمل کرده چون بر دلالت بر چی میکنه متا؟ بر زمان هری؟ آره. این ما تو الموت؟ این ما هم؟ بله. چون دلالة بر مکان میکنه پس محل منصوبه او ظرفه چیه؟ بله. خب پس اگر دلالت بر زمان یا مکان کردن محل منصوب میشن به خاطر ظرف بودن و این وقعت علی حدث فمفعول مطلق. میگه اگر این واقع شد بر حدثی بر چی؟ بر کاری بعدش یعنی حدثی ذکر شد اون موقع خود این اسم شرط چی واقع میشه؟ مفعول مطلق نقشش مفعول مطلقه مانند ایا بن تدارب ادارب که اینجا ما میگیم ایا مفعول مطلق منصوب بافته چون بقیه رو میگیم محلن منصوب اگر مجلسون بشن اگر مرفوهم بشن میگیم محلن ولی این اگر یادت باشه این مورمه این با فتح و کسر و ذمه اعراب میگیره ها؟ بله و این وقع بعدها فعل لازم و خبره فعل شرطی و جوابه اگر ببین اعرابشون داره توضیح میده میگه اگر واقع شد بعد از ادات شرط فعل لازم اگر بعد از عدات شرط چی فیلی اومده بود فیل لازمی. می اون موقع این عدات شرط میشه مبتدا فیل شرط و جواب شرط میشن خبر فیل شرط و جوابش هم میشن چی؟ مانند من یذهب اذهب معه اینجا من میگیم مبتدا محلن مرفو یذهب اذهب هر دوتا با هم میشند خبر اردت مشانچي محللن مرفوع وان وقع بعدها فعل متعد واق عليها فمفعول به اذا غير واقع شود بعد از فعل متعدي اگر واقع شود بعد از فعل چي متعدي اون موقع مفعول به معني من تضرب اضرب اريد تضرب فعل متعدي پس من اینجا مفعول بهیه پس من میشه چی؟ مفعول به او واقعا على ف ف ف, ف اگر این فعل واقع بر زمیر شد بر خود اسم شرط نشد اون موقع مسئله اشتغاله مسئله چیه من يكرم هو زيدون اوكرمه اینجا ما میگیم من منسوبه ولی با يُكْرِمُيْكَ حَذْفَ حَسْ وَيُكْرِمُهُ بعدی تفسیرش می‌کنه بحث اشتغال و ان شاء الله خواهیم خوند اونجا می‌فهمید مسئله چیه ببین اگر میگه فعلی متعدی بعد از این ادات شرط اومده بود خودش مشغول با یک ضمیری بود اینجا بحث چی پیش میاد بحث مسئله اشتغال مسئله اشتغال اونجا مفصل می‌خونیم ان و على ذلك يجوز في اداه شرط ان تكون في موضع رفع خوب طبق این توضیح که داد اعراب عدات شرط و توضیح داد تا اینجا میگه و علاوالک طبق این توضیح و قواعد، يجوز في فی عدات شرط ان تكون في موضوع رفع بالابتداء. ابتدا جائز است که عدات شرط محلن مرفو بشن بخاطر مبتدا بودن اینو دکه خوندیم زمانی که بعد فعل چی بود؟ لازم او في موضوع نصب بفعل مزمرن يفسره الفعل الظاهر و ظاهر نه این آخری رو فقط داره توضیح میده ببین همین مسئله اشتغال رو داره توضیح میده من یک کریم حزیدون او کریمو میگه و على ذلك يجوز فی ادات الشرط ان تكون في موضع رفع بالابتدا یعنی زمانی که فعل متعدی ما مشغول بازمیر بود جا دو اعراب میتونیم بش بدیم چون در اشتغال دو اعراب دیگه جایزه میگه بر این اساس جایز از در ادات شرط یعنی زمانی که بحث اشتغال بود میگه جائزه است در ادات شرط که محلن مرفوع بشه یعنی ما بگیم من یو کرم حزیدون او کرم هو ما منو مبتدا حساب کنیم این جایزه این چیه چون اسم در ابتدا اومده میتونیم چیش حساب کنیم مبتدا دیگه چه جایزه او فی این نس بفعل مظمرن یفسره الفعل و الظاهر و بعدها یا بش بگیم این من محلن منصوبه با فعلی که پنهانه و فعل بعدی تفسیرش میکنه فعل بعدی که یکرمو دست تفسیرش میکنه به ما میگه که آقا فعل قبلی چیه؟ فعل قبلی یکرموه یعنی یکرمو یو... من یکرمو زیدون که اینجا منو کدوم فعل به منسوب کرد؟ فعل مزمر فعل چیه؟ چرا خود یکرومه بعدی منصوبش نمیکنه؟ میگیم چون یکرومه بعدی با زمیر من مشغوله به این بهش میگند اشتغال فعل خودش با چی مشغوله؟ میگیم پس ما یک فعلی رو قبلا مزمر میدونیم که اون فعل منو چکار میکنه؟ منصوب یعنی دو اعرابی اینجا جایزه میتونیم بگیم من مبتدا هست و میتونیم بگیم نه این من منصوبه با فعل مزمر که این فعل بعد از این داره چکارش میکنه؟ تفسيرش میکنه یعنی به ما میگه کونفل چی هست اول فعل مزمر چی فعلی هست و مثلها و مثل و مثل هذا التفصيلي اسماء الاستفهام بل اسماء الاستفهام هم همین مثلا روشون پیش میاد سیزده تدخل الفاء تدخل الفاء على جواب الشرط وجوبا اینو بخونیم یاد ناتون اینجا کافیه تمام کنید تمام کنید کلا خود بخونید تدخل الفاء على جواب شرطی وجوباً اذا امتنع جعله شرطا داخل میشواد فا بر جواب شرط به شکل واجبی یعنی ما باید سر جواب فا بیاریم چه زمان؟ اذا امتنع جعله شرطا زمانی که ممتنع باشه که ما ممنوع باشیم یعنی زمانی که نشه اونو شرط قرار داد. اگر نتونیم ما اون جواب شرطو شرط قرار بدیم پس باید سر جواب شرط چی بیاریم؟ فا بیاریم پس داخل می شد فا بر جواب شرط حجوبن زمانی که ممنوع باشد قرار دادن آن شرط و, ذلك في خمسة مواضع. و این مسئله در پنجا پیش میاد اذا کان جمله اسمیتا زمانی که جواب ما جمله اسمیه بود اینجا باید فاروش روش بیاریم مهما اردت فا مستعد مستعدن لقضائه. هر هرچه بخواهی من آماده ام برای انجامش خب اینجا جواب ما فا اینی مستعدن هست که جمله اسمیه هست باید روش فهم اومده فا این می این فا واجبی آقای اوسام اینجا چون جمله ما جمله چیه چون این رو جمله اسمیتی میاد خو خلاص الفا و داخلتو علی جمله اسمیتی قد تحذف فی الضرورتی میگه یک نقطه رزک میکنیم میگه این فا که بر جمله اسمیتی میاد دایی موقع خاطر ضرورت شعر هم چی میشه حذف میشه مانند قول شعر فما لم یموت في اليوم لا بد أنه سيعلقه حبل المنيّة في الغد. خوب إنجاب. میبینیم که فا حث شده چه شده فمن لم يموت في اليوم لا بد انه سيعلقه حبل المنيه في القدي ان شده است حث شده است خب بله مثل همین شعر که فا به خاطر ضرورت در شعر هست میشه اما در در نصر حذف نمیشه ف... پس هر کس نمیرد امروز ناچارن ریسمان مرگ فردا او رو آویزان خواهد کرد هر کسی امروز نمیره قطعا فردا میمیره خب اینجا ما میمیریم که فا حذف شده فملم یه متفل یومی فلابد انهو که اینجا فا چه شده؟ حف شده و ها من الضرورات المقبولتی فی شعر و اما فی غیره فلا یجود حفظ میگه این ها الضروراتی هست که در شعر مورد قبوله اما در غیر شعر مورد قبول نیست اذا کانم مقرونن بقد او بسینه او بسین او بسوفه جای دیگری که ما باید فا بیاوریم کجای زمانی که جواب ما همراه با سین یا صوفه یا قد باشه مانند من مدحک به ماله سفیک فقط ذمک هر کس مدح کرد ترا به آن چیزی که در تو وجود ندارد براسی که را مزمت کرده است که اینجا میبریم فقط ذمکه روی جواب که چون قد اومده پس فا ضروریه یا مثال بعدیش این فعل سوء فستلحق کن ندامه اگر بدی رو انجام بدی پشیمانی به تو خواهد رسید اینجا هم فستلحق کن چون روی تلحقو سینه اومده پس فا هم روش اجبارا واجبا اومده فستل حقو اذا کانا یکی از جاهی دیگه فا باید بیاد اذا کانا به ما او بلن زمانی که جواب بلن یا با ما منفی بود مانند انجا انی ضیفن فما اطرده او فلن اطرده اگر مهمانی پیشم بیاید من او را نمیرانم. می که فا روی نافی اومده است فما اطرده یا فلان ات رو ها؟ پس یکی از جای دیگه که میاد کجایه؟ زمانی که جا... جواب ما روی جواب ما یا فلان آمده بود. یکی از دیگر جاهایی که باید فابیات کجایه؟ اگر فعلا جامدن، زمانی که فل جامد بود. زمانی که فل چی بود؟ مانند ندهن اصاوفه بیس ما اگر بدی کردن پس بد کاریست که کردند. خب اینجا بئسه از اونجا که فعله جامده روش اومده؟ فا اومده چون بئسه نه مزاره داره و نه امر لذا جامده لذا چیه؟ اذا کان فعلا طلبی گن یکی از دیگر جاهایی که فا میاد زمانی که فعل فعله چی باشه؟ طلبی باشه مانند انسقت عدووک فلا تشمت به اگر دشمنت افتاد شادی نکن خب اینجا میبینیم فلاتشمد از اونجایی که فعل فعل طلب لای نهی اومده ما قبلا خوندیم که نهی جزء جملات طلبیه دیگه پس فاروش اومده فائده يدخل تحت الفعل الطلبي جميع انواع طلب من الامر والنهي والدعاء ولو كان بصوره الخبر والاستفهام میگه زیر فعل طلبی قرار می تمام انواع طلب از امر و نهی و دعاء که اون دیروز خوندیم اگر چک هم به شکل خبر و استفهام آمده باشند لكن إذا كان الاستفهام بالحمزة وجب تقديمها على الفاء. أما إنه اختار باش ميجا اگر استفهام بوسيلة همزة بود بعدين استفهامه إن همزة بعد قبل استفهام بعد بيات. وكذلك العرض والتمني والترجي والتحضيض. هم تنين عرضه تمنيو ترجيو تحضيض كينارخونديم قبلًا. ما ند كنت تحب الله أفلا تمثل أمره؟ اگر خدا را دوست میداری آیا پس امرش را فرمان بردار نمی که اینجا از اون جایی که حمزه اومده افلات هم تزیل میبینیم که حمزه قبل است با حال چون عرزه حمزه قبلش میاد چهارده تدخل الفاء، على جواب شرطی جوازن اضاکان مدارن مثبتن میگه داخل میشه فا بر جواب شرط به شکل جوازی زمانی که مزاره ف... چی بود؟ مثبت بود مانند من یطلب فیجیدو پس فا بر جواب شرط به شکل جوازی میاد زمانی که مزاره بود؟ یعنی میتونیم این فارو میتونیم فا رو اینجا نیاریم میتونیم بگیم من یطلب یجید من یطلب یجید و میتونیم هم بیاریمش من یطلب فیجید فائده متقترن المدارعو بالف وجب رفعو على تقدی محله الرفع على الابتدا والجملة من المضارع وفاعله خبر عنه يك تبصيري رو اینجا فائده رو ذكر کرده نقطه رو هرگاه همراه شد فا. مثل من مثال من يطلب فا يجدو هرگاه همراه شد مزارع با واجب است مرفو کردنش یعنی اگر ما اینجوری گفتیم من یتلوبو دیگه نمیتونیم بگیم فیجی دو حالا اگر اون سکون رو به خاطر توقف جمله میکنیم که آره ولی اگر در وسط بود حرکتش چیه؟ زمه بایلی میگه هرگاه همراه شد مزاره بافا واجب است مرفو کردن اون مزاره بر, بر, بر, بر تقدیر این که اونجا یک زمیری بعد از فا وجود داره و محلن مرفوع بخاطر اینکه مبتداه اون زمیر و جملیک که فعل مزاره هست و فاعلش میشن خبر اون زمیر میشن خبر بسیل همین مثالو اگر بخوایم حلش کنیم اینجور میگیم من یاطلب فیاجد اینجا ما میگیم فهو یجدو میگیم هو مبتدای یجدو فعل مزاره فاعلش هوای مستتره فعل مزارب با فایلش که هوای مستطره میشند خبر هو، میشند خبر چی؟ هوا پانزه یمتنی و دخول الفا علال جواب فی مواضع ممنوع از داخل شدن فا بر جواب در سه جا در سه جا فا بر جواب نمیاد در چند جا؟ در سه جا اذا کان موضوین متصرفن من منقدر اینجا نباید فارو بیاریم زمانی که ماضی باشه متصرف باشه و قد هم روش نیامده باشه مانند منصابره و فره هر کس صبر کند بیروز می شود اینجا روی زفره فا ممنوعه فا چیه؟ چون فعل ماضی هست متصرف هم هست فعل متصرف قبلا خوندیم دیگه یعنی هم مزاره داره و هم امر زرابه نسره کتب اینا رو میگن های متصرف که در زدش میومد فعل جامعه دیگه خوب اذا کان مدارع منفی بلم یکی از دیگر جاهایی که نباید لم بیاریم زمانی که فعلا ما مزاره بود و منفی با من لم بود من منجاده لم یندم هرکس جود کنند پشیمان نمی شود اینجا فا ممنوع هست چون لم اومد روی مزاره سوم اینجا اذا كان مدارعا منف ب التي ليست لنف المستقبل بل مجرد نفی نح عد ع الله لا تخصوها اگر فعل ما مزاره بالا بود اما نلهی که مستقبل و نفی میکنه بلکه فقط منفی میکنین فقط چکار میکنه؟ در این حالت هم نمیشه فآورده فا اگر بشمارید نعمتهای الله را، نمیتوانید بشمارید این دیگه آینده رو نف نمی کنه مطلقاً چیکار می کنه؟ فقط نف میکنه باله پس اینجا هم میتونیم فار را بیاریم در این سجا، زمانی که مازی متصرف باشه روش قدر نیومده باشه مزاره باشه، منفی با باشه و مزاره باشه و منفی با لا باشه که توضیح اومده فائده یدکانت لا لنفی المستقبل رو بتالجواب جواب بلفا مرفوعا على تقدیر المبتده خوب یک نقطه رو اینجا ذکر میکنه نقطه یا همون تابسره یا همون تذکره چی بگذاریش میگه زمانی که لا برای نفی مستقبل بود اون موقع جواب با یک فای رک داده میشه یعنی یک فایر روی جواب میاریم و فعل رو هم مرفوع میکنیم به این تقدیر که اونجا مبتدای وجود داره و حسف هست اونجا چی وجود داره؟ مثل مثال قبلی که ترکیبش کردیم فمن یؤمن بربی فلا یخاف بخصا ولا رحقا خوب اینجا دقت کن فمن یومین بربی فلا یخاف اینجا لایی هست که آینده رو نفی میکنه پس اینجا فارو میاریم فای ربتو میاریم و اینجا یک مبتدایی رو مقدر میکنیم که حسفه و خافو رو مرفوع میکنیم فلا خافو یعنی در واقع تقدیر شنینه فهو لا یخافه فهو لا یخافه بله اینجا دیگه این خافو مجزوم نیست مرفوعه خب موقعی که مرفوع باشه پس مبتدایی براش دیگه در نظر میگیریم شانزده متى كان الجواب جملة إسمية؟ يصح لك أن تربطها بإذاء الفجائية، كما تربطها بالفاء. مجه حرجاً جواب جملة إسمية بود. حرجاً جواب بود؟ جملة إسمية بود. يصح لك أن تربطها بإذاء الفجائية. مجه سهيه هذ. که ربتش بدی با اضافه فجائیه همانطور که ربطش میدادی بافا همانطور که جائز بافا ربطش بدی جایزه که با اضافه هم چکارش بکنی؟ یعنی به جائز فا رو بیاری به جائز فا رو بیاری؟ ولکن یشتر تو في الجملتی اما نکتهای رو با دقت بکنی اما شرط است در جمله انتکون خبریتن اون جمله با چه باشه؟ خبری باشه موجبتن موجب باشه غیر منسوخت نسخ نشده باشه اینا رو همه رو تو مثال برد توضیح میدم فی توفیل عدات انتکونه این او اذا و در اون عدات هم شرط هست که اون عدات این یا اذا باشه مانند دقت کن این تنزل بهم بلیتون اذا هم یه اصول اگر بر اونها مشکلی بیاد ناامید می شوند خب اینجا انتنزل بهم بلیتون، این تنزل فعل شرطه جواب کجای هم یه اسونه جواب ما جمله خبریه هست یا نیست هست هم اسمی هست دیگه جمله چه جمله ما اسمی هست جمله ما چه هست گفته بود اگر جمله اسمی باشه همانطور که میتونیم تونیستیم رو بیاریم ازار رو هم میتونیم یعنی ما اینجا میتونیم تونیم بگیم انتنزل بهم بلیتون فهم یه اسون. میگه همانطور که با میتونیم ربط بدیم میتونیم با اضایش هم کار کنیم؟ ولی به چه شرط؟ خبری باشه که هست موجب باشه که هست منسوخ نباشه که منسوخ نیست مثالی دیگه اضا تحول الخبیثو اضا هو یظهرو خبثو زمانی که تغییر کنه خبیث، خوبستش شروع اونجا دیگه ظاهر میکنه قدرت بگیره اونجا خباستش رو ظاهر میکنه اینجا هم اذا میتونیم سیم بیاریم فا رو هم میتونیم بیاریم چرا؟ چون عدات شرط ما اینجا اینه در ابتدای جمله انتنزل و اذا گفته بود اگر عدات این و اذا بودن با این شرایطی که گفتیم به جای فا میتونیم با اضا هم چیش کنیم؟ ربتش بدیم خب قبلا این دختر رو گفت که اگر جمله ما اسمیه باشه خبریه باشه ما میاریم اگر یادت بیاد حالا داره توضیح میده که به جای هم میتونیم ازارو رو هم بیاریم ولی با این شرایطی که الان گفت حالا با این شرطایی که گفت در موارد زیرا در مثاله زیر برای هر یک از این چیزایی گفته بود یک که, گفت که ایک مثال میاره. دقت کن فایده تاب این ولذلك يمتنع الرب في نحو إن أطأ بكر فسلام عليك ببین در مثال إن أطأ بكر فسلام عليه اینجا میگه ما نمیتونیم به فا رو بیاریم چرا چونちゃんと شرط و ذکر کرد گفته بود اون شرایط باید باشه تا ما رو یکی از اون شرطا این بود که چی باشه؟ خبریه باشه این جمله خبری نیست فسلامون علیک دعای فسلامون علیه دعای درست سلامون علیه جمله اسمی است ولی معنای دعا داره پس سلام برو بعد از اون جایی که پس خبری نیست نمیتونیم به جای فاچ با ازاچ کارش کنی ربطش بدیم و اندخلت دخلت القوم فما هم به قائمین لک ببین در این مثال هم نمیتونیم به فماهم بقائمین فماهم به ف نمیتونیم ازا رو بیاریم نمیتونیم بگیم ازاهم ازا ماهم بقائمین چرا چون موجب نیست منفی شده باما ببین و اندخلت علی القب فماهم بقائمین لك اگر بر قوم وارد بشی براتون نمی ایستند دیدی که با ما منفی شده چون موجب نیست پس نمیتونیم به جای چی بیاریم اذا بیاری در مثال بعدی و انت غیب ان تغیب زید فان اخوه حاضر اگر غائب شود زید پس همان برادرش حاضر است اینجا چرا نمیتونیم تونیم رو بیاریم چون اینجا منسوخ شده ان اومده مبتدا خبر رو نسخ کرده ان اومده چیکارش کرده بله یکی از نواسخ مبتدا خبر ان اخواتش هستن یا همون حروف مشبهه هم. من یجتهد فهو ینجح در من یجتهد فهو ینجح به نظر شما چرا نمیتونیم به جای فا اضا رو بیاریم به خاطر این که ادات ما اینجا ان و اضا نیستند عدات ما منه اگر من باشه که نمیتونیم اضا رو بیاریم باید فا رو بیاریم ببین اونجا گفته بود دا. گفته بود هرگاه جواب جمله اسمیه بود صحیح هست که تو ربطش بدی با ضای فجاریه اما شرط هست در جمله که خبریه باشه موجب باشه منسوخ نباشه و عداتش هم اینو اضا باش باشد با این شرایط میتونیم همانطور که بافا ربطش بدیم میتونیم با ااعضا هم چکارش کنیم این شرایط در این, پنج مثالی, در این چند مثالی که در این مثالی که کاده بود وجود نداشتن لذا نمیتونستیم اضا رو هم بیاریم خودش گفته لی انل جوابب اول جمله دعاییه. و فی ثانیت منفی و فی منسوخه به نه و ليست الادات فی الرابع این او ایدا خودش گفته میگه زیرا در جواب اولی جمله دعایه هست سلامون علیکه دعا هست در دومی دو منفی هست فما هم بقایمین در سومی منسوخ است چون این روش اومده و در بعدی هم ادات ما این او ایدا نبود خوب هفته هم میخونیم إذا اجتمع شرط وقصر زمانك كهم شرط وهم قسمب وهم جمشدان جعل الجواب للسابق منهما فاستغني به عن جواب الآخر نحو إن تخلص لي العمل والله أضاعف لك الأجرح اینجا دقت داشته باش میگه زمانی که جمع شدند شرط و قسم یعنی هم شرط اومده بود هم قسم اون جواب برای کدومیک چون هم شرط ببین این بحث رو اینه که هم شرط نیاز به جواب داره و هم قسم خب ما این جواب یکیه برای کدوم قرارش میدیم جواب اول شرط برای اولی هر کدوم یکی از zina اول اومده بود برای اول قرارش میدیم میگه زمانی که جم شرد شرط و قسم قرار داده میشه جواب برای سابق از این دوتا برای اونی که اول اومده است شرط نه. نه. نه ببین شرط اومده عدات شرط قبلش اومده خب بعد از عدات شرط ج... جواب که میشه آخر میاد قبل از جواب قسمی هم اومده حالا اون جواب رو ما برای کدوم قرار بدیم برای شرط یا برای قسم هر کدوم یکی از اینا اول اومده بود در این مثال دقت کن انتخلص لی العمل اگر خالص بگردانی برای من عمل را به خدا قسم مضاعف میکنم برای تو پاداش را خب اینجا انتخلص لی العمل والله اضيف اضيف جوابه اینجا هم این اومده هم والله اومده میگه اضيف برای سابق هست برای اونی که قبلا اومده یعنی این یعنی چی؟ بای اینجا کدوم کی اول اومده؟ تقدمه همه ما یطلب خبر اگر قبل سحر دو چیزی اومده بود که نیازه به خبر داشت ک مبتدا مانند مبتدا آقا مبتدا اومده بود مبتدا نیاز به چی داره خبر او اسم کانه یا اسم کانه اومده بود خب اسم کانه هم نیاز به چی داره خبر و او یا چیزای دیگه که نیاز به خبر داشت میگه ترجح جانبه بشه در این حالت جانب شرط راجح میشه یعنی اینجا ما دیگه کاری به سابق نداریم جواب و برای چه حساب میکنیم؟ برای شرط برای مانند این مثال زیدون والله این یزورنی او کرمه. خب اینجا زیدون مبتده هست یا نه؟ خلاص زیدون که مبتده زیدون نیاز به خبر داره دیگه پس اینجا میبینیم از اون جای که زیدون که مبتداه قبل از سوگند هم اومده قبل از شرط هم اومده اینجا جانب شرط ترجح راجع میشه یعنی خبرو ما به شرط میدیم نه به سابق به چیش میدیم؟ به شرط جوابو به شرط میدیم میگیم این جواب مال شرطه مال چیه؟ نه مال سابق مثلا در این مثال خودمون زیدون والله این یزورنی اک اکرم هو والله قبل اومده این بعدش اومده با این حال اکرمو که جواب هست ما به واللهش نمیدیم بلکه به چیش میدیم به این. چرا؟ میگیم چون اینجا قبل از هر دوتا کلمه اومده که نیاز به خبر داره مبتدایی که نیاز به چی داره؟ یا در مثال بعدی یکونو امرون این یوذنه بوالله اودبه اینجا هم از اون جایی که قبل از شرط و قبل از سوگند اسم کانه اومده یکونو امرون امرون اومده اینجا هم ما اودبه برای چی در نظر میگیریم؟ برای شرط باره. این خبر را برای شرط قرار می دیم جواب رو این جواب را چه قرار می دیم؟ و این تأخر القسم مقرونن بالفا وجب جعل الجواب لح یک نقطه دیگه رو می گه می گه اگر قسم در تاخیر بود یعنی بعد از این اومده بود ولی این قسم همراه با فا بود فای فا روش اومده بود اینجا دیگه جوابو باید برای همین قسم در نظر بگیریم باید و جمله القسمی جواب و شرط و جمله قسمو دیگه جواب شرط قرار بدیم مانند ان اطاعت الله فوالله لا یغمورنک به نعامه اگر پیروی کنی خدا را سوگند به قرآن که تو را می با با هایش. خب اینجا ان اطاعت الله فوال فوالقرآنی اینجا سوگند ما که و باشه روش فا اومده خب اینجا لیغ نکه که جواب هست برای کدومی در نظرش برای این که در نظرش میکنیم برای اینی که در سابق قبلا اومده یا برای سوگند میگیم برای سوگند این جواب برای چی در نظر میگیریم؟ چرا؟ چون روی سوگند ما فا اومده چون سوگند ما همراه با با فایه و خود جمله قسم اون میشه جواب شرط خود جمله قسم میشه جواب که اینجا فوالله فوالقران لا این جمله میشه جواب این 18 اذا عطف على الشرط مضارع بالفاء او بالواو جاز فيه الجزم عطفا على ما قبله والنصب على ازمار عن المصدريه نهو این تزرنی فتوحدیثنی اکرم که هیچده میگه زمانی که عطف داده شد بر شرط مزاری زمانی که عطف داده شد بر شرط ما چیه فعل مزارئی, فعل مزارئی که فعل مزارئ با چی چیزی عطف داده شد یا بافا یا با یا بافای عاطفه یا با وف آطفه عطف داده شد فعل مضارع بر فعل شرط بر فعل چه؟ بر فعل شرط اینجا دو اعراب ای جایزه جایزه که مجزومش کنیم اون فعل مزاره دومی رو که رویش فا اومده و واف یعنی با فا و واف عطف داده شده جایزه که مجزومش کنیم یعنی مجزومش کنیم چرا چون به ما قبل عطف شدیم خب مسلمه چیزی که به ما قبل عطف شه اعرابش رو میگیره دیگه اولی مجزوم این هم مجزوم میشه انتظرنی فتحدثنی ا میتونیم مجزومش کنیم این فعل مضارع رو که شده است و نصف على ازمار ان الماستریه و میتونیم یه کار دیگهشم بکنیم منصوبش کنیم که بگیم اینجا ان ناصبه اون ان مستریه مقدره یعنی ما اینطوری میتونیم بگیم انتظورنی فتوحدثنی میتونیم اینجوریش اعراب بدیم میتونیم بگیم انتظورنی فتوحدثلی متوجه شده؟ یعنی دو اعراب جایزه یعنی چند اعراب جایزه دو اعراب اما اذا اطفه علال جواب این زمانی بود که ما بر فعل شرط عطفش دادیم اما اگر بر جواب جزم داده بشه چه عطف داده بشه این هم نقطه مهمیه میگه اما اذا اطفه علال جواب جازه فیه رفع ازن علال استعنافی علاوتن علال وجهین المذکوره میگه اما زمانی که عطف داده بشه یک فعلی بر جواب بر چی؟ اینجا غیر از اون دو اعراب قبلی مرفو کردن این فعل معطوف هم باز هم جایزه. معتوف کردنش چیه؟ ؟ بله، یعنی ما میتونیم منصوبش بکنیم میتونیم مجزومش کنیم و میتونیم مرفوعش هم اگر بر فعل شرط عطفش میدادیم دو ایراب جایز بود جزم و نسب و اگر بر جواب یکی رو عطف بدیم سه ایراب جایز میشه چند تا؟ حالا مثال آورده ماننده انتخفو ما فی صدوری کم او و ببین اگر بپوشانیدان چه که در سینه آیتان هست یا آشکارش کنید یعلم الله میداند را خدا خب اینجا فعل شرط ما کدومه تخفوه یعلم جواب شرطه یعلم هو چیه جواب شرطه که مجزومه و یعلم ما في السماوات ورد این یعلم دومی این عطف به یعلم هوه یعنی اینجا ما فعل مزاری رو عطف دادیم بر جواب بر چی؟ اینجا سعراب جایزه ما میتونیم بگیم ان خفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات والارض و ما فی السماوات والارض و ما فی السماوات والأرض سعراب براش چیه؟ خب چرا جزمش جایزه؟ قبلا گفتیم چرا ناس جایزه؟ با ازمار ان مصدوریه که ان ناصبه هست. شررفش جایزه اثرنا حسابش میکنی این وا وا استعناش حساب میکنی 12 كثيرا ما يحذف شرط وجوابها وجوابها إن كان كلاهما منفيا بلا أو أحدهما. بيش بشي شرط وجوابش أجر حردو بلا یا یکی از دو یعنی آقا شرط و جواب چی میشن؟ شرط و جواب حس میشن. زمانی که هر دو تا منفی بلا باشن یا یکی از اونا منفی به چی بشه؟ بلا باشه مانند انزورتنی ازورکه و الا فلاح زرنی و اعتب علیک و انکان لک عذر فلا ببین؟ میگه گفته بود که حس میشه شرط این و چیش؟ و جوابش زبانی که هر دوتا منفی باشند بالا یا یکی از آنها منفی باشه با چی؟ اینجا دقت کن در این مثال ان زورتنی ازورکه و الا یعنی و الا زورتنی فلا ازورکا ببین یعنی اینجا هم شرط ما هست و الا زورتنی شرط هم هست فلا ازورکا جوابش هم چیه چرا چون هر دو با لا منفیه در این مثال اولی هر تا بالا چی هستن؟ ببین، این زورتنی ازورکه و ایلا زورتنی فلا ازورکه فلا ازورک متوجه شدی؟ بله زورنی و ایلا تزورنی اعتب الک. اینجا فیل شرط هست فیل اینجا فیل شرط چیه؟ که بایل که خاموش که ما درست دوده و انکانه لکه فلا باز هم حس شده یعنی زرنی و امکان لکه عذران فلا اعتب اینجا جواب ما چیه؟ حسفه فائده و ندر حذف شرطی معا این بدون لا و مع غیرها مقترنا بلاه نحو المرء یجزا به ان انخیران فخیر میگه خیلی نادر هست هست همراه با این همراه چی؟ بل بدون له پس و خیلی نادر هست. چی تو چنین وضعیتی می تابسری؟ خیلی شرط جملات و خیلی ترجمه فقط کرده دیگه توضیحی نداته نه؟, نه؟ نداته؟ خب اونجایی که نیاز به توضیح هست اصلا این کتاب فارسی این کارو رو توضیح نمی خب مشکلی نیست اینجا دقت کن میگه و ندار حفظ و شرط و خیلی نادر هست چه؟ و نادر هست حفظ شرط معا این همراه این بدون الله ببین اونجا گفته بود بالا اگر منفی باشه بالا حس میشه میگه همراه این و بدون لا نادره که شرط چه بشه حس بشه و اما غیرها و همچنین نادر است ببین و همچنین نادر است که شرط با غیر از این یعنی با ادوات دیگه با ادوات دیگه حث بشه مقترنن به اگر چکه اونجا اون غیر از این همراه بالا هم باشه ببین دو چیز دقت کن حذف شرط با این بدون لا نادره یعنی همچنین حذف شرط با لا منطقه بدون این بدون چه؟ یعنی شرطهای دیگه اینجا هم نادره مانند المر و یجزا به عملی این کان خیرن، ایجاز شرط ما که کانه هست حس فست. مثال بعدی من یوسلم يسل علیک فسلم عليه، من یوسلم علیک فسلم عليه، ومن لا یوسلم. این جام؟ یوسلم چیه؟ حس شده. پس نادره، این چیه؟ بِس إذا كان الشرط فعلاً ماضياً أو مضارعاً منفياً بلاجاء حذف الجواب إذا تقدمه أو اكتنفه ما هو جواب في المعنى هو ظالم إن فعل وهو إن فعل ظالم إننا إن شاء الله لمحتذون بِس زمانك الشرط فعل ماضي باش زمانی که چه؟ زمانی که شرط فعل ماضی باشه او مدارعا منفی یعنی. یا یا مزارع چه باشه؟ منفی باشه بلم جاز حذف الجواب جایز است که جواب چه کار کنیم؟ حففش کنیم اذا تقدمه زمانی که قبل از اون آمده باشد او اکتنفه او یا بعدش ماهو و جواب فی معنا اون چیزی که اللحافظ معنایی جواب هست اللحافظ معنا چی هست؟ ماننده دقت کن زمانی که شرط ما فعل ماضی بود زمانی که شرط ما چی بود یا مزاره منفی بلم بود جایز حذف جواب جایز چی؟ زمانی که قبل از اون چیزی اومده بود که معناه که اللحازم معنای چی بود؟ جواب بود مانند هو ظالمان انفعال ببین اینجا دقت کن هو ظالمان انفعال اگر این کارو بکنه ظالمه خب اینجا انفعل که شرط ماه جواب کجا رفت میگیم حصفه جواب کجاه حصفه چرا حصفه؟ چون قبل از اون کلمه اومده است که اللحازه معنایی جوابه هو ظالمونه یعنی انفعله ذالکه فهو ظالمون ولی جواب ما چیه؟ محذوفه. چرا محذوفه؟ میگه چون قبل از اون چیزی اومده که در معنا جوابه در چیه؟ لازمه معنای جواب انفعالا فهو ظالم فهو خوب. همین معنا رو هو ظالم داره که قبلش اومده پس اینجا هو ظالم جواب ما نیستا جواب ما حرفه ولی از اون جایی که هو ظالم وجود داره جائزه که جواب چه میشه اینجا؟ حذف و هو او اکتنافه ببین یا قبلش اومده باشه اون جمله که در لحاظ معنا جوابه یا اکتنافش یعنی این طرف و اون طرفش مانند ده هو ان فعل ببین هو قبلش اومده و ظالم آخرش ها اینجا هم جواب ما حسفه میتونیم ظالمون رو جوابه گیری ما قبلا خوندیم که یک کلمه اسم نمیتونه جواب ما میتونه فعل مازی باشه میتونه فعل مزارب باشه میتونه جمله باشه ولی یک کلمه بله اینجا در اکتنافش اومده هو قبلش اومده ظالمون آخرش این دوتا با هم معناش جوابو میدند پس هو انفعلا ظالمون ببین اینجا باز هم جواب ما جایزه که شرط بشه. چرا بخاطر این در اکتنافش در دور کلماتی ومدند که اللہ معنا معنی جوابند و اننا إن الله لمحتدون بایلی بستيك. يجزم المضارع بإن مزمرة وجوبا في جواب الطلب بجميع أنواعه التي تقدم ذكرها في باب النواصب ما عدا النفي بشرط أن يكون الجواب مجردا من الفائ والواوي مسببا أما قبله نحو أطلب تجد لا تكفر تدخل الجنه اين بيتك ازورك ليتني تقي اخلس لعل الله يرحموني اتوب الا تضيفنا لنكرمك ببين انجه یک مساله خیلی مهمی رو بیان کرده و اون این هست که میگه فعل مضارع با این مضمر با اینی که پنهانه وجوبن مجزوم میشه در جواب طلب یعنی اگر قبل از فعل مزاره طلب اومده بود فیلم مزاره مجزوم میشه با اینی که به شکل وجوبن اون چیه، این چیه پنهانه کدوم طلب به جمعی انواع اهلتی تقدم ذکرها اون طلبی که در باب نواسه با اون رو خوندیم چندین امر، نه، استفهام، عرز، تمانی اونا رو خوندیم اونا رو میگن طلب میگه هر یکی از اونا قبلش اومده بود فعل مزارد در جواب اونا قرار گرفت مجزود میشه با این مزمر جز نفی با تمام انواع طلب جز نفی ولی به شرط این که ببین با این شرط که روی مزارد فایواف فایواف فا نه اومده باشه و این فعل مزارد مسبب ما قبلش باشه مانند چی اطلب تجد تلاش کن میابی یعنی اگر تلاش کنی میابی ببین اینجا تجد تجد چرا مجموعه میگیم چون در جواب تلب اومده اطلب امر دیگه امر تلب هست اطلب تجد تلاش کن تابیابی متوجه شدی؟ پس فعل مزاره اگر در جواب تلب اومده بود جز نفیه مجزوم میشه ولی به شرطی که روش فاواف. چون اگر فاواف بیاد منصوب میشه قبلا خوندین در بحث نواسه. اگر همینجا مثلا روی همین تجید فا بیاریم مثلا اینجوری میشه. اتولب فتجیده. اتولب و تجیده. این خیلی بحث ساده‌یه. مانند ده اتولب تجید تجید چون در جواب طلب مجزوم هست. لا تکفر تد خلیل جنته تدخل, تدخل مجزومه. از اونجا من کسرش میدم که بعدا ساکن اومده و دو تا ساکن نمیشه خود. پس اینجا هم تدخل چون در جواب نه اومده مجزومه این نبی توک ازور که اینجا ازور مجزومه چون در جواب استفام اومده و استفام طلب هست اگر یادت بیاد لی تنی اخلص اینجا هم اخلص مجزوم شده چون در جواب طلب اومده طلب ما اینجا تمنی هست لی لا کاشکه الله یرحمونی اتوب اینجا هم اتوب مجزومه فعل مزاره ما چرا؟ چون در جواب طلب اومده از نوع ترجی شاید آ قبلا خوندیم که ترجی هم چی بود اینجا هم عرض اومده ال تضف ونا نوکرم که نکرم مزون چرا چون در جواب طلب اومده فواید اعاکان الجاب و مقط ان باللف او بلوب نسی به میگه زمانی که جواب جواب طلب فعل مزاره اگر جواب بود و همراه بابواف یا با بود منصوب میشه همانطور که قبلا خوندی مگر یاد بیاد در نوازه و اذا لم یکن مسبباً طلب خب اینجا یک نقطه رو اگر یادت باشه گفت میگه به چه شرطی جواب فعل مزاره مجزون میشه میگه اگر مسبب باشه اگر چی باشه یعنی اولی سبب دومی باشه اولی بله این دومی مسبب ما قبل باشه در این حالت فعل مزاره مجزوم میشه مثلا اونجا گفته بود لا تکفر تدخل الجنده تدخل مجزوم شده چرا؟ چون مسبب ما قبله یعنی اگر کفر نکنی وارد بهشت میشی اگر اینجوری نبود مجزوم نمیشه حالا مثال شو آورده میگه و او اذا لم یکن مسببا انت طلب اگر فعل مزاره ما مسبب از طلب نبود لم یست حج از جائز نیست که مجزومش کنیم فلا یقال جایز نیست درین این مثال بگیم فلا تدن من الاسد تحلق اینجا جایز نیست تحلک و مجزوم کنیم چرا؟ چون درست قبلش طلب اومده ولی این مسببش نیست تحلک ببین اگر ما اینجوری معنی کنیم اگر نزدیک شیر نشوی هلاک میشوی؟ نه اگر نزدیک شیر نشوی هلاک میشوی؟ نه هلاک نمیشی پس اینجا نمیتونیم هم آه... تحلکو مجزوم کنیم. بعد بگیم تحلکو. متوجه شدی؟ یعنی دوومی بعد مسبب اولی باشه تا مجزومش کنیم. بجاز متحلک. میگه جایز نیست که مجزومش کنیم، لان عدم دلوی من الاسد ليس سبباً زير نشودن بشير سبب من للهدا. زیرا نزدیک نشدن به شیر سبب هلاکت نیست. و اما قولک، اما این قول، لا تدل من الاسد تسلم. نزدیک شیر نشو سالم میمونی. این درسته؟ چون اگر نزدیک شیر نشوید میشه اینجا درسته اینجا اولی سبب دومیه. یعنی اگر نزدیک نشی سالم میشی اولی سبب برای چه؟ برای دومی اینجا درسته فان آدم الدلو من الاسد سبب للسلامه ولذلك جزم میگید نزدیک نشدن بشیر سبب سلامت به این خاطر این مجزوم شده دو لا یجب في هذا الباب ان يكون الطلب محضا في كما في باب الناس اونجا در بحث باب الناس ما گفتیم قبل از واو طلب محض اومده باشه باشد تا می بشود اگر اونجا یادت بیا در بحث جزم نه اگر طلب ما قبلش اومده بود اگر طلب محض هم نبود مشکلی نیست ما بعدش میشه مجزوم میشه میگه لا یجب فی هذا الباب ان يكون و محضا میگه در این باب یعنی در بحث جزم شرط نیست که اون طلبی قبلش اومده قبل از فعل مزاره طلب محض باشه اینجا جایزه که بگیم صح احدث کا ساکت باش به تو سخن میگم صح اسم فعل آ طلب محض نیست ولی احدث مجزوم شده نزال انوزور که پیادش رو نگاهت کنم میبینیم که انوزور مجزوم شده در حال که قبلش چیه اسم فعل طلب محض فعل امر نیست اه. این اسم فعله یعنی اسمیه که به معنای فقط فعل امره. اونجا سهم هم خاموش اسم آ ولی فقط به معنای امره یعنی طلب محس، طلبای محس چند چیزی بودیم که خوندیم امر نه استفهام ترجی تمنی عرس. یادت میاد؟ اونا بودن چی؟ طلب محس خب، الحمدلله که من روز این کان ای درسه به پایان شی هم فضل خداوند سبحانت